خداوند متعال داخل قرآن میفرماید که فنکه ما طاب لکم من النصا مخنا و سلاس و ربا وقتی که ازدواب نیکنی میفرماید که اول بگیدی مخنا دوتا دوتا و ستا ستا و ربا چارتا چارتا فین خفتم اللہ تعدل فواحدا او ما ملک دیمانکو اگر نمیتونی عادل بکنید انصاف بکنی فواحدا پسی که بگید پس اول خداوند متعال ترغیده چی مخنا مخنا دوتا دوتا بگید سیاست تا بگید چهار تا چهار تا بگید فنخف تو الله تعالو اگر میترسید که عدلی نواسه فوا فواحدا تاسیکی تاسیکی بگید این فادر در خود اصطلاح عربی فال تعقیب یعنی بعدا اولی اینها رو بگید نمیذونی بعد ایک لاغلی که بگید ترغیب خداوندی هست بعد داخل احادیث داریم داخل احادیث داریم داخل, داخل کتاب صحیح بخاری کتاب النکاح اونجا حدیثی آورده من بخار رحمه الله که افضلکم اخفرکم نساء بهترین شما کسی هست که بیشتر خانم داشته باشه داخل سی بخاری اومده بهترین شما است که بیشتر خانم داشته باشه بعد بیگن نبی کل بخدر شارکت من بهترین شماستم بیشتر خانم دارم اما در بعض بیگنا نبی فرند مطلب انسانها خطاب کرد. یعنی بهترین انسانها کسانی هستند که خانم بیشتر بگیرن، اونها بیشتر خانم میگینن، یعنی بهترین انسانها هستن. پس همینت بی کنید بیشتر بگیرید. حالا این انتلس بعدش کس تگیشه؟ وای انتلس مارک نیست، جناهتی نیست، کوفر نیست، شیرک نیست. هزار جنایت می میکنه، نارهاد نیستن. اگر بره زناب کوره نارهاد نیست، بره وصال بکنه نارهاد نمیشن. اما زن میگیرم آلا چکار کرده کفری کردید، و با زن اینجوری نیست حالا خداوند متعال این مجوز را برای زن داده این حالا همه مشروط رو ادالت ما نمی رو بگی کن حالا نفر دوم و اولی برقرار دیگه هر کجا را خودش بیره یاران میگی خرج تو برو دارا یاران می دولن اینجوری نیست اینجوری نیست اما در کل حکم باس باس جو جو جواز هست تر نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نه تا خانم در یک نکاح داشت غیر از اونهایی که وفات کردن و نه تا هنگام وفات خودش نه تا خانم داشتند و به جهانیان ترغیب داد بگیرید خودش گرفت اب اونها اینو ترغیب و داد و بعد از اون صحابه کرد چگونی عمل می کردند حضرت امیر عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ دختری حضرت حفظ رضی الله تعالی عنہ که وقتی که بی شده بود از همسری در جنگ باید شهید شد آن پیش حدرت عوضت قدیق فرمودن که حفظ رو عقد کن سکوت کرد را پیش حدرت عثمان پیشنهاد حفظ رو عقد کن گفت فیله اراده نداره بیشتر ناراهش وست قدیق اکبر گفتن این عوضت خیلی دوست که هست خیلی با هم سمیمی تو وقتی پیشنهاد دار که دوتای حفظ رو عقد شد. که چرا قبول نمی کنیم بعدها که در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکار فرستاد برای حضرت حفظ رضی اللہ عنہ وقت پیغام نکار فرستاد دوباره سیدیگا کنیم حضرت عبا فرمودن اور روز ناراحت شدی من میدو ناراها شدید اما اللتی که من جواب ندادن این بود نبی گفته بودند که من حفظ رو عقد می اگر نبی کریم ای کارو نمی کن کار قطعا من میکردم. اما نخواستم سر نبی کدی فاش کنم پس هم میگرفتن و این عیب هم نمیدونستن وی دونستن اغم زیاد کردی بود. مدیریت کسی اجازه خاصو اول شرط نیست اجازه شرطنی فکو با اجازه بده مدیره داری و قدرت حرکت میکو کارتو قضیه چی هم ګور قانون هیچ کو پس دنیا اول خدا وفته بگیری پیغمبر خودش گرفته گفته بگیری پس بگیری اما شرط اینه عدالت عدالت نبی بکر ربی اسلام در مرز وفات به جهانیان ادالت را به نمایش گذاشتر گفت ادالت اینو میگویم بیمار بودن که حرکت کرد ازی خونه به خونه رفتن که شب, شب ماندن در خونه ها مشکل بود دو نفر نبی کریم میگرفتن یک طرح حضرت عباس گرفته بود حضرت آیشو میگه میگه نبی کریم وقتی که نوبتی کرد ازی خونه به خونه بعدی میرفت امروز پیش این خانم بود فردا خونه بعدی بود بیمار بود پاها رو کش کشف میخوردن میگه یک طرف حضرت عباس گرفته بود و طرف بعدی حضرت علی رضی اللہ تعالی نهو از این خونه میبر داخل او خونه اونجا مینشد نوبت تمام میشد نفر بعدی بود اونجا میره یار فرمون عدل اینو بگوین اگه و اغشو میتونی این عدل رو انجام بدهید بگیرید بگیرید و انجام بدی اشکالی ندارد ما منویت نداردیم، نباید ناراحت هم شود. ناراحتی طبیعی هست بعد ناراحت بیشتر روی دختر کسی از ازدواج از دوای بکری رو خار بشه آورده بشه. ناراحت طبیعی هست، اما ناراحتی نباید به هر دیو برسه که فاصله بیفته و ناشروکی بکرند و کلوات ناشراستی رو بکارو بره. فر ادرو راید بکرند و ایکارو ای انجام بدهند. بعد این است که ماسک و جدا باشه. کسی زان گیره، زن دوم گیره، اینجور نواشیه، گی، اوتاگ وایش، آله کسی تواش گیره، گو حالا دیگه میتونه خالق داره باهم تی اوتا میخوان، جایزه نه گفته نه، این کجایز نیست، بعد جذاب بکن، گفت خود جذاب بکنم که اوتاشی بیشتر نیست، نوشت کی وایش داخل اوتا میبرم، این هم درست نیست، دریای اوتا اینها درست نیست، نبا اسرار هم دیگر فاش میشند، کارشیه کسی میتوانم، توانه مالی داشته وایش، مسکر بعد با جدا باشه خونه رو جدا بکنه اجاره بکنه درست بکنه حالا که خونه سوا درست بشه بعد خرجه ها رو هم بده اشکال داره و این خور انجام بده اشکالی نداره بعد مسئل بعدی در خود وصله احکام چند همسری که اون از که شب رفتن پیش خانون شرط هست این شب همونجا ماندن شب ماندن روز در اختیار خودشه روز اگر آقا دنبال کار زندگی 24 ساعته پیش خانما بشینه شب اینجا شب روز اینجا شب روز اونجا پس که اخلاق نمیاره روز مال خودشه روز آزاده هر کجا میره دنبال کارش بره اگر گاه گاهی پیشه در روز بیشتر رفت این مؤاخذه نمیشه شب باید تقسیم باشه و اون چیزهای هم که مسائل شب دیگه اجباری نیستن تقریبا نوبتی باشه اون هم دیگه اون مسائل خصوصی شب نوبتی نیستن اونده چرا چون تمایل قلبی هستون اون یه جبری نمیشه ایک سلاج هم بکره نمیشه اونجا این بیت اختیاری نیست چرا چون که چیزهای قلبی اینها فیلی اینها مکلف نکرده اما در تایید نفقه این نکته کی بدانید بدا خانمی که شما گرفتید حالا اگر خانوم پولدار هست خانمی که آورد تو خونه خودش ترمایدار هست خرج این خانومی رو بیشتر خانم اگر فقیر هست خرج یا خرج معمولی هست.